با سلام به شنوندگان خوب های صوتی با یه داستان دیگه در خدمتتون هستم که امیدوارم از شنیدن داستانمون لذت ببرید اسم داستانمون هست فلیسیا و گلدان گلهای سورتی یکی بود یکی نبود روزی روزگاری کارگر فقیری که حس می کرد دیگه آخره عمرشه تصمیم گرفت که داراییاشو بین دختر و پسرش که خیلی اونها رو دوست داشت تقسیم کنه رو صدا زد و گفت مادر شما به عنوان جهیزیه دو تا چارپایه و یه تخت حسیدی به خونه منو برد. من آورد من خودمم یک مرغ یه گلدان های صورتی و یه انگشتر نقره داشتم که البته دوتای آخری رو یه خانم نجیب زاده که یه شب مهمون من بود بهم به هدیه داد. اون خانم به من گفت که مراقب هدایای من باش و مواظب باش که انگشتر گم نشه و یادت نره گلها رو آب بدی. من مطمئنم که دختر تو از هر کس دیگه تو دنیا زیباتر میشه. اسم اون رو فلیسیا بذار. و وقتی که بزرگ شد انگوشتر و گلدان گلهای صورتی رو بهش بده تا شاید کمی از فقرش جبران بشه بعد پدرشونت دوباره گفت دخترم این دوتا رو تو بردار و بقیه چیزا مال برادره هر دوتا فرزند ظاهرا راضی به نظر می رسیدن وقتی پدرشون مرد اونا برای اون گریه زاری کردند و مال و اموال رو هم همونجوری که اون گفته بود بین خودشون تقسیم کردن فلیسیا فکر میکرد که برادرش خیلی اونو دوست داره اما یه روز که اون روی یکی از چارپایا نشسته بود برادرش با عصبانیت بهش گفت که تو برو و به انگشتر و گلدون خودت باش و به وسایل من کاری نداشته باش فلسییا که دختر آرومی بود چیزی نگفت فقط یه گوشه‌ای رفت و آروم آروم شروع کرد به گریه کردن اما برادرش برونو به آرومی کنار آتیش روی چهارپایه نشست همون شب موقع شام بورونو برای خودش تخم مرغ خوشمزه ای درست کرد و خورد و پوستش رو به طرف فلیسیا انداخ و گفت این تنها چیزیه که میتونم بهت بدم اگه دوست نداری برو بیرون و برای خودت قرباقه بگیر و بخور. در این مردابه کناری قرباقه خیلی زیاده. فلیسیا چیزی نگفت و دوباره گریه کرد و به اتاق کوچیکش رفت اتاقم اتاق از رایحه گلای صورتی خیلی خوشبو شده بود. فلیسیا پیش گلا رفت و با ناراحتی گفت گلای صورتی زیبا. شما قشنگ و خوشبو هستید. شما تنها چیزایی هستید که برای من مونده. من از شما خوب نگهداری میکنم اما نمیذارم که هیچ دست بدکاری شما رو از شاخه جدا کنه. همونطوری که فلیسیا داشت با گلا حرف میزد، یه دفعه متوجه شد خاک پای گلها خوش شده. به خاطر اون پارچ آب رو برداشت و به طرف چشم رفت که آب بیاره. چشم از کلبه اونا زیاد دور نبود. وقتی به چشمه رسید کنار اون نشست تا کمی استراحت کنه. هنوز چند لحظه نگذشته بود که متوجه شد خانمی به طرفش میاد. چند تا خدمتکارم اون خانم رو همراهی میکردم و چند تا خدمتکار دیگه یه تخت روونش رو حمل میکردم. وقتی اونا به نزدیک چشمه رسیدن سایبونی برای اون زن آماده کردند که زیر اون نیمکتی قرار داشت. روکش نیمکت از طلا بود. خیلی زود شام مفصلی رو در اونجا داخل ظرفهایی از طلا و بلور آماده کردند. صدای باد بین شاخه‌های درختها و ریزش آب چشمه یه موسیقی خیلی آرومی به وجود آورده بود. فیلیسیا که از دیدن این صحنه ها کرده بود خودش رو پشت درختها خواهیم قایم کرده بود چند لحظه بعد ملکه گفت من فکر کنم دخترکی پشت درخت پنهون شده برید و اونو پیش من بیاری فیلیسیا خودش از پشت درخت بیرون اومد و به آرومی به ملکه سلام کرد ملکه پرسید دخترم تو اینجا چی کار میکنی؟ از دوستان نمیترسی. فلیسیا گفت آه خانم دختر فقیری مثل من چیزی نداره که از دست بده. ملکه خندید و گفت تو اون قطعا هم که فکر میکنی فقیر نیستی. فلیسیا جواب داد من خیلی فقیرم از تمام مال دنیا فقط یه گلدون گل و یه انگشتر نقره دارم. ملکه گفت ولی تو یه قلب داری اگه کسی اون رو از تو بدوزده چی کار میکنی؟ دختر گفت خانم من نمیدونم دوزیدن قلب یعنی چی ولی همیشه شنیدم که کسی بدون قلب نمیتونه زندگی کنه و اگه قلب کسی بشکنه میمیره. البته من اونقدر فقیرم که از مردن هم پرسی ندارم. ملکه گفت دختر قشنگم تو باید خیلی خوب از قلبت مراقبت کنیم. حالا بگو ببینم شان خوردی؟ فلیسیر جواب داد نخه خانم. برادرم هر هرچی رو که تو خونه داشتیم خورد منا که دستور داد شام مفصلی برای فلیسیا آوردند و خودش برای اون در بشخاب غذا کشید اون از اینکه فلیسیا اینقدر گرسنه است تعجب کرده بود به فلیسا گفت که میخوام بدونم این وقت شب کنار چشمه چیکار میکردی فلیسا گفت اومده بودم که برای گلهای صورتیم آب ببرم و دست دراز کرد تا پارچ رو که کنار دستش بود برداره که با کمال تعجب متوجه شد که پارچ معمولیش تبدیل به پارچی از طلا شده و روی اونم پر از از و داخل اون پر از از آب. اون ترسید که دست به پارچ بزنه ولی ملکه گفت فلیسیا این مال توه برو و با این پارچ گل هات رو آب بده و یادت باشه که ملکه جنگل دوست توه فلیسیا خودش رو به پای ملکه انداخت و برای مهربونیش ازش تشکر کرد اون با صدای بلند میگفت آه بانوی عزیز اگه کمی اینجا صبر کنید میرم و گلدون گلهای صورتیم رو براتون میارم اونا در دست شما بهتر میمونه ملکه صورت فلیسیا رو نمازش کرد و گفت برو فلیسیا من منتظر میمونم تا برگردی. فیلیسیا پارچ رو برداشت و به طرف خونش دوید و رفت به اتاقش. اما در مدتی که تو خونه نبود برادرش برونو گلدونش رو برداشته و به جاش یه کلمه بزرگ گذاشته بود. فیلیسیا با دیدن این صحنه خیلی ناراحت شد و نمیدونست باید چیکار کنه. به چشم برگشت و به ملکه گفت بانو، برادرم گلدون منو دزدیده حالا دیگه من چیزی به روزی انگشتن نقره ندارم که از شما خواهش میکنم اون رو به عنوان هدیه از من قبول کنیم. من گفت ولی دختر عزیزم اگه من انگشت تو رو بگیرم تو دیگه چیزی نداری اون وقت چیکار میکنیم خیلی با ساده دلی جواب داد آه بانو اگه من شما رو داشته باشم همه چیز دارم ملکه انگشترو گرفت و به دستش کرد و سوار بر تخت روانش شد و حرکت کردند و از اونجا رفتن. فلیسییا اونقدر ایستاد و به اون نگاه کرد که اونا از نظر پنهون شدن و بعد به کلبه برگشت و تا صبح به اون ماجرا فکر کرد. وقتی فلیسییا به اتاقش برگشت اولین کاری که کرد این بود که کلم رو از پنجره اتاق به بیرون پرت کرد. وقتی فلیسییا کلم رو به بیرون پرد کرد صدای آرونی شنید که میگفت وای تو م کشتی فلیسیا از شنیدن این صدا تعجب کرد و فکر کرد که خیالاتی شده چون که کلمها که حرف نمیزنن به محظ روشن شدن هوا فلیسیا که به خاطر از دست دادن گلدونش ناراحت بود دنبال اون رفت اما اولین چیزی که بیرون کل بدید کلم بیچاره بود اون با پاش به کلم زد و گفت تو اینجا چیکار کنی؟ چطور جرأت کردی خودت رو به جای گلدون زیبای من بذاری کلم جواب داد اگه منو به اینجا نمیآوردن، خودم هیچ وقت این این کارو نمی‌کردم فلیسیا از اینکه میدید کلم حرف میزنه، از ترس داشت میلرزید. کلم ادامه داد حالا که تو اینقدر از من بدت اومده خب منم میرم ولی باید بهت بگم که گلدون تو در رخت خواب برونو هستش. فلیسیا با شنیدن این حرف خیلی نامید شد چون نمیدونه چه چجوری باید گلدون رو برگردونه. اون کلم رو برداشت و سر جاش گذاشت و وقتی کارش تموم شد مرغ برونو رو دید که در اون اطراف مشغول دونه خوردن بود. اون به مرغ گفت: ای مرغ عزیز بیا اینجا. میدونم که تو هم دست کارهای برونو ناراحت هستی. مرغ گفت: ای دختر، من نکش. در عوض منم راز مهمی رو بهت میگم. تو فکر نکن که دختر یه کارگر فقیر هستی. مادرت الان ملکه ایه که شیشتا دختر داره. و شاه اون رو تهدید کرده که اگه برای اون پسری به دنیا نیاره که تاج و تخت رو برس ببره اونو میکشه اینطوری شد که وقتی ملکه هفتمین دخترش رو به دنیا آورده از ترس پادشاه به خواهرش که یه جادوگر بوده گفته که دختر اون رو بگیره و در عوض بهش پسر بده روزها گذشت شاه ملکه رو در برج زندانی کرده بود و اجازه نمیداد که بیرون بره. ملکه تصمیم گرفت که فرار کنه و به دنبال بچش بره. بنابراین به وسیله یه نردبون تنابی از برج آبزون کرد و فرار کرد. اون بعد از چند روز را پیمایی در حالی که از سرما و خستگی دیگه طاقت نداشت به این کل برسید. اون موقع من زن کارگر و پرستار خوبی هم بودم بنابراین تو رو به من سپردن اون همه این رو برای من تعریف کرد ولی قبل از اینکه بگه باید چی کار کنه مرد از اون جایی که من نمیتونم هیچ رازی رو پیش خودم نگه دارم یک روز که یه خانم زیبا به اینجا آمده بود این داستان عجیب رو براش تعریف کردم وقتی این قضیه رو تعریف کردم اون زن دستی به من زد و من در همون لحظه تبدیل به یه مرغ شدم. من خیلی ناراحت بودم و همسرم که در اون وقت بیرون از خونه بود هرگز نفهمید که چه بلایی سر من اومده. اون بعد از اینکه خیلی دنبال من گشت با خودش فکر کرد که لابد یاد تو دریا غرق شدم و یا یه حیوان وحشی منو خورده. همون زن یه بار دیگه به اینجا آمد و دستور داد که اسم تو باید فیلیسیا باشه و انگشتر و گلدون صورتی رو برای تو گذاشت. وقتی که اون در این خونه بود، 25 نفر از محافظای شاه به دنبال تو اومدن که میخواستن تو رو بگیرن و بکشن. ولی اون چیزی زیر لب خوند و همه اون سربازا تبدیل به کلم شدند. یکی از اون کلما همونی بود که تو اونو از پنجره بیرون انداختی. از اون موقع نمیتونم که چجوری شد که دیگه ندیدم هیچ کدوم از اونها حرف بزنن. حتی خودم هم تا به حال نمیتونستم حرف بزنم. فلیسیا با شنیدن این حرفا واقعا تعجب کرده بود. اون با مهربانی گفت پرستار بیچاره من من واقعا برای تو متاسفم و آرزو می‌کردم که می‌تونستم تو رو به حالت اولت برگردونم ولی ما نباید ناامید بشیم با این چیزایی که گفتی حدس می‌زنم به زودی اتفاقات تازه‌ای بیفته حالا بهتره به دنبال گلدونم برم که اون رو از هر چیزی در این دنیا بیشتر دوست دارم برونو به جنگل رفته بود و هرگز هم فکرشو نمیکرد که فلیسیا به دنبال گلدون به اتاقش بره فلیسیام از نبودن برادرش استفاده کرد و به اتاق اون رفت تا بدون دردسر گلدون رو آزاد کنه اما به محض اینکه پاش به اتاق رسید دید که ارتشی از موشها جلوی تخت وایستادن. و اگه اون بخواد به تخت نزدیک بشه موشا بهش حمله میکنن و اون رو گاز میگیرن. فلیسیا که خیلی ترسیده بود فریاد زد: آه گلدون عزیزم تو چطور میتونی در این اتاق وحشتناک بمونی؟ ناگهان فلیسیا به یاد پارچ آب افتاد و با خودش فکر کرد که پارچ احتمالا نیروی خارقلاده ای داره. برای همین به سرعت به دنبال اون رفت و اون آورد. و چند قطره از آبی که داخل اون مونده بود رو سر مشاریخ. در یه لحظه موشا با تمام سرعتی که میتونستم پا به فرار گذاشتن و اینجوری شد که شاهزاده فلیسیا تونست گلدونش رو نجات بده. گلدون هنوز خوش بود. بنابراین از بقیه آب پارت به پای گلدون ریخ. فلیسیا خم شد تا گلها رو بو کنه که صدای آرومی گفت لیسیای عزیز بالاخره روز موعد فرا رسیده تا من به تو بگم که گلها چقدر تو و زیبایی تو هستند شاهزاده خانم که دیگه تحمل چیزهای عجیب غریب مثل حرف زدن مرغ گل و ارتش موش‌ها رو نداشت رنگش پرید و بیهوش شد در همین لحظه برونا وارد شد اون که تو جنگل سخت کار کرده بود وقتی دید که فیلیسیا گلدونش رو برداشته خیلی عصبانی شد و اون رو بیرون انداخت و در رو هم پشت سرش بست. هوای تازه بیرون باعث شد که فلیسیا به هوش بیاد چشماشو باز کرد و وقتی چشماش باز کرد ملکه جنگل رو روبروی خودش دید که مثل همیشه جذاب و زیباه. ملکه گفت تو برادر بدی داری من دیدم که اون چجوری تو رو بیرون انداخت. میخوای اون رو تنبیه کنم؟ فلیسیا گفت نه بانو، من از دست اون عصبانی نیستم. ملکه پرسید فرض کن که اون برادرت نبوده اون وقتی بازم از دستش عصبانی نبودی؟ فلیسیا گفت ولی به هر حال اون برادرمه. ملکه گفت چی؟ تو خبر نداری که یه شخصاده هستی؟ فلیستیا گفت چرا تازه فهمیدم ولی چطوری میتونم مسئله به این مهمی رو بدون هیچ گونه دلیلی باور کنم؟ ملکه گفت فرزند عزیزم طرز صحبت کردنت نشون میده که یک شاهصادل واقعی هستی. من میتونم تو رو از این شرایط بد نجات بدم. تو هم موقع بود با رسیدن یه مرد جوان خوش حرف ملکی قطع شد. جوان یک کت مخمل سبز رنگ که با یاقوت تزئین شده بود به تنگ کرده بود و تاجی از گلهای صورتی روی سرش گذاشته بود. اون به پای ملکه افتاد و دست اون رو بوسید. ملکه گفت پسر عزیزم چقدر خوب شد که اومدی و اون رو بغل کرد و بعد رو به فلیسیا کرد و گفت فلیسیای عزیزم من تمام چیزهایی رو که اون مر بهت گفت میدونم اما تو مطمئنا نمیدونی که زین پیر هستش؟ کسی هستش که بعد از پردن پسر من به قصری که ملکه یعنی مادرت تو اونجا بود تو رو به اون سپرده بود اون از روی اشتباه به باغ گلی که در اون نزدیکیه میره و یه جادوگر اونو تبدیل به باغ گل سرخ میکنه مادرت هم از این موضوع باخبر نمیشه منم نتونستم کاری انجام بدم حتما حث میزنی که من از این کار چقدر عصبانی شدم و هر کاری انجام دادم که توته‌ی اون جادوگر رو باطل کنم ولی کاری از دستم بر و تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که شاهزاده رو به شکل گل صورتی به جایی که تو بودی آوردم تا شاید وقتی که تو بزرگ شدی عاشقش بشی و ازش نگهداری کنی. میبینی که همه چیز همون جوری که من امیدوار بودم پیش رفته. دادن در نقره از طرف تو به من نشونه این بود که مشکلات رو به پایانه و آخرین شانس دشمن هم همون ارتش موشها بود که برطرف شد. حالا فلیسیای عزیز اگه تو با پسر من ازدواج کنی، این انگشتن نقره حلقه تو میشه و حتما در آینده خوشبخت میشی فکر میکنی اون به اندازه کافی خوب و زیاد و هستش که باش کنیم. کنی فلیسیا جواب داد خانم شما مرا شرمنده مهربونیتون کردین من میدونم که شما خاله من هستین و در واقع از لطف و مهر شما بود که سربازهایی که برای کشتن من اومده بودم تبدیل به بوته کلم شدن و پرستداریم که بوده تبدیل به یه مرغ شده و حالا هم لطف میکنید که از من میخواید با پسرتون ازدواج کنم. نمیدونم چطوری باید درباره شک و تردیددم برای این کار به شما توضیح بدم. میدونم که عاشق شدن تو زندگی اونم برای اولین بار چقدر شیرینه ولی آیا امکان داری که قلب شاهزاده رو به من بدید، شهست دست فلیسیا رو گرفت و فریاد زد قلب من مال شماست ای دختر زیبا من تا به حال در افسون و تلسم وحشتناکی گرفتار شده بودم وگرنه خیلی زودتر از اینها به شما اظهار علاقه می کردم. این حرف شهست خانم رو خیلی خوشحال کرد و ملکه که دیگه تحمل نداشت فلیسیا رو در اون لباسهای کهنه ببینه اساش رو به اون زد و گفت من میخوام که تو در زیبایی بی باشی. تو همون موقع لباس های کهنه دختر تبدیل به لباس باشکوهی شد که با دونه های نقره شده بود. و موهای زیباش تاجی از الماس گذاشته شد. حالا اونقدر لباو جذاب شده بود که پسر ملکه محفه تماشای اون شده بود و فریاد زد شاه خانم منو بیشتر از این منتظر نذار و بگو آیا با من ازدواج میکنیم؟ ملکه لبخند زنون گفت من فکر میکنم اون قبول کرده که با تو ازدواج کنه تو همون وقت برونو از کلبه بیرون اومد تا به سر کارش بره اون از دیدن فلیسیات اون لباس مجلت خیلی تعجب کرد اما فلیسیا اونو با مهربونی صدا زد و از ملک خواست که برونو رو ببخشه. ملک گفت چی میگی؟ میخوای که اونو ببخشی؟ راستاد خانم گفت آه خانم من خیلی خوشحال میشم و میخوام که همه مثل من خوشحال باشن. ملک اون رو بوسید و گفت بذار ببینم چه کار میتونم برای برونو انجام بدم. اون با یه حرکت اساش رو تکون داد و خونه روستایی اونها تبدیل به قصری پر از گند شد و فقط دو تا و تخت حصیری به شکل قبلش باقی موندن تا همیشه به برونا یادآوری کنن که چقدر فقیر بوده بعد ملکه خود برونا رو هم به مردی خوش لباس و معدب تغییر شکل داد و اون هم هزاران بار از ملکه تشکر کرد خلاصه که ملکه مرغ و بوته های کلم رو هم به شکل اول خودشون برگردون و اونا هم خوشحال و راضی شدن شاه ساده و دختر با هم ازدواج کردند و سالهای سال به خوبی و خوشی با هم زندگی کردند. امیدوارم که داستانمون براتون لذت بخش بوده باشه تا داستان دیگه خدا نگه دارتون. آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین های را سفر کنیم جایی که پریها و کوطول ها زندگی میکنن کانال هزار همونیه که دنبالش کهبال جایی که داستان های افسانه ای, ای سر دنیا به صورت صوتی و جذاب برای شما روایت میشه کانال تلگرامی هزار سفری به دنیای خیال و رویه سفری